روز به خیل میکنیم، کنیم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و به لطف الهی از هر گونه گزندی به ما بحث خودمون رو در تقسیم اصدار به مرشهه و مجرده و مطلقه برای شما با جزوه گفتیم مثال رو هم زدیم و یک مثال را هم خوندیم اما الان یک بحث کوچکی از اصاره طبعیه در حرف رو که قول داده بودیم بگیم که مازاد بر کتاب باشه و شما داشته باشید اون رو عرض میکنم با یه مثال بعد انشاءالله ادامه بحثمون رو میخونیم که دیگه تکرار مبحث گذشتمون هست ما گفتیم که استاری در حرف در فعل در مشتق که شبه فعله و در حرف ایجاد میشه در فعل و شبه فعل یعنی مشتق رو برای شما مثال های متعددی رو زدیم. موند استاره تبعیه در حرف لذا میجید. هر حرفی هر حرفی بیان معنای جزئی رو میکنه هر حرفی، بیان معنای جزئی رو می و معنای کلی آن هر حرفی بیان معنای جزئی را میکند و معنای کلی آن معنای اسمی میباشد مثلا مثلا من الان من من گفتم شما نمیتونید میگم موقعی که مینویسید توضیح رو بدم الان من میگم من شما نمیتونید این من من افتداییه است من بعضی است من چیه بعد وقتی که مجرورش رو ذکر میکنم میگم من المسجد مسجد توی جمله هم میگم میگم جئت من المسجده وقتی میگم جئت من المسجد شما میفهمید که من برای ابتداییت بوده اما من ابتداییت مطلق که اسم رو بیان نمیکنه من ابتداییت جزئی ببینید من المسجد از اون مسجد اومده من المسجد تو من فجره من بیان ابتداییت در زمان رو میکنه اونم زمانی که الفجر امروز صوره همینطور ال چون همینطور الا پس یه معنای اسمی دارند که ابتدائیت نمیدونم فرض کنید که قایت میگن برای انتهای قایت انتهای قایت مثلا الا سببیت مثلا فرض کنید که بابا الیت با لام حرف یه معنای به قول خودمون خودش داره اما این معنا رو تو جمله جزئی میرسونه درست شد جزئی میرسونه حالا پس بنابراین گفتیم که حرف حرف معنای جزئی را میرسونه و معنای کلی اون اسمی است درست شد اسمی است من مثلا من در کلام سر تو سر تو با سین من البسرت الالکوفت ابتداء از بسره را که جزئی است میرساند ابتدا رو میرسونه اما ابتدای جزئی یعنی از بسره یعنی تو جمله ما ابتدا رو میرسونه اما ابتدای از بسره و معنای ابتدایت معنای ابتدائیت این معنای اسمی و مصدری است با یا و تا مصدر جهلی بهش میگن مثل مثلا انسانیت یعنی انسان بودن ولی ابتداییت معنای اسمی و مصدری چون مصدر جعلی است میباشد چون شد پس هرگاه پس هرگاه، در کلامی، در کلامی، حرفی را به جای حرف دیگر بنابر علاقه مشابهت آوردیم بنابر علاقه مشابهت آوردیم لازم است قبل از آن در ذهن معنای اسمی و کلیه، آن دو حرف را به یکدیگر تشبیه کنیم اگر صحیح بود معنای جزئی آن دو حرف نیز آن دو حرف نیز قابل تشبیه به هم می باشد می باشد مثل مثال لَأُسَلِّبَنَّكُمْ سَلَّبَ يُسَلِّبُو متکلم وحدش اوسلب و معایکت بنون تحکید اوسلبن لام اولش کم در آخرش ل اوسلبن آیه قرآنه ل اوسلبن نکم فی, فی جزوه با زال جزوه زال این جمع جزء شاخه نخل درخت نفت لا اصلبن نکم فی جزو این نخل لا اصلبن نکم فی جزو این نخل لا اصلبن نکم فی جزو این نخل. تا اینجا وای من یه توضیح بدم بعد دنباله یه جزواره می نمیسی ببینید این مثال رو مثلا تو نه شما می خوندید می اینجا فی اومده جای علا فی به معنای علا خب فی به معنای علا یعنی چی؟ اگه میشه هر حد حرفی رو برداریم حرف دیگه جاش بذاریم نه قاعده داره حالا اون که گفتن قاعده داره شون ببینید لعو سلبن نکم یعنی قسم میخورم شما رو به دار میکشم به صلیب میکشم فرعون گفت به اون مخالفین به اون ساهرین اونهایی که مخالف شدن اون ساهرینی که آورده بود به اونها گفتش که حالا که طرفدار موسی شدید لعو سلبن نکم شما رو به دار میکشم فی جزو اند در تنه درختان در تنه کسی رو که در تنه درخت کسی رو که دار نمیکشن بر تنه درخت دار میشن آویزون میکنن، بر تنه درخت نه در تنه درخت درست خب حالا تا اینجایی که این اصل این اینطوری بوده ما اومدیم گفتیم الا مناش چیه؟ گفتن استعلاء الا استعلاء مثل زیدان علی سر زید روی بامه بر بامه بام خوب الا معنیش یعنی بر چیزی بودن فی معنیش چیه منای اسمیش تمکن چیز ظرفیت فی معنیش یعنی داخل چیزی بودن اونم مصدر دیگه ظرفیت خوب ما اول اومدیم تو ذهنمون اینجا نگاه کنید ابتدا این نوشته میشه ابتدا در ذهن خودمان معنای اسمی و کلی استعلاع را به ظرفیت تشبیه کرده ای. با جامعه یعنی با جامعه تمکن تمکن یعنی سلطه داشتن گفتیم استعلا رو تشبیر میکنیم به ظرفیت در تمکن و سلطه یعنی چی؟ استعلا یعنی یه چیزی روی یه چیزه تمکن یعنی توی اونه ظرفیت یعنی توی اونه کدومشون تسلط روش بیشتره؟ الان من دستم رو باز بکنم روش یه دونه مثلا فرض کنید که سکه ای باشه تو دست من دست منم باز سکه روی دست منه خب این دست من الان نسبت به این سلطه داره دیگه دارتش تو دست منه اما اگر همین سکه رو من دستم رو ببندم و این تو مشت من باشه که بشه ظرفیت دست من تمکنش کنش اون موقع بیشتره یا اون موقعی که دست باز از تو سکه روشه خب معلوم داخل بودن سلطه و تمکن و تسلط بیشتر از از روی چیزی بودن خب پس استعلا تشبیه شده به ظرفیت در تمکن و سلطه و تسلط اینم وش شد. بعد گفتیم حالا میشه تمکن رو بذاریم جایه به قول خودمون استعلا مثلا بگیم به جایی که بگیم مثلا مثلا زید استعلاع دارد بر علم آه. بگیم زید داخل علم است قوطهوره در علمه خب. این خیلی چیزتره دیگه پس بنابر این یعنی اگه بگیم زید علم روی دستشه خب تا بگیم زید علم توی مشتشه خب توی مشتشه بیشتر چیز داره پس تو معنای کلی میشه استعلا رو تشبیه کرد به ظرفیت در تمام کند اینو تو ذهنمون میگیم میشه خب بعد میایم استعلای جزئی استعلای جزئی علا جزو النقل استعلای جزئی علا جزء النقل ظرفیت جزئی فی جزء این نه وقتی میگیم تو کلیاتش میشه استعاره تشبیه به ظرفیت کرد پس در جزئیاتش هم یعنی بر شاخه قرما یا در شاخه قرما پس در شاخه قرما میشه بر شاخه رو بهش تشبیه کرد یعنی فی علا بهش تشبیه شده علا تشبیه شده به فی در تمکان بعد علا هست شده فی جاش نشسته. این میشه استعارهی طبعیه در هر خیلی ساده است. قه خب؟ یعنی ما اول اومدیم استعلا رو تشبیه کردیم به ظرفیت. در تمکن. بعد دیدیم میشه این تو مرحله اول. بعد اومدیم توی جزئیات علا رو که برای جزئی استعلا تشبیه کردیم به فی که برای جزئی ظرفیت بعد فی رو گذاشتیم جای الا تو عبارت به جایی که بگیم لعو سلبن نکم الا جزوه النخل. گفته شده لعو سلبن نکم فی جزوه نه این هم استاره حرفیه که ایشون ذکرش نکرده بود و من با مثال براتون ذکر کردم این یه مثال دانستید بقیه یه مثال ها هم مشابه همین هست فرمولش اینه که معنای کلی اون حرف به هم تشبیه میشه اگر الان مثلا اینجا نمیتونست به جای مثلا الا جزء النفع به جای الان مثلا فرض کنید که مثلا کاف بیاره کاف حرف جد خب نمیشه که معنای اسمی استعلاء رو تشبیه کرد به معنای اسمی تشبیه نمیشه استعلاء و تشبیه با هم اتون. نمیشه مثلا به جای فرض بفرمایید که مثلا الا ما به جای الا مثلا فرض کنید که حرف جر مثلا مثلا ربه بیاریم اون نمیشه چون نمیشه علا که استعلاه تشبیهش کرد به مثلا فرض کنید ربه که برای تکسیره. این امکان نه اما استعلاه رو به تمکن استعلاه رو به ظرفیت در تمکن میشه تمام شد این بحث استعلاه تشبیه آن به ظرفیت در استعاره طبعیه در حرف که من برای شما گفتم و شما هم تو این مثال آموختید دیگه تمام شد چیز خاصی نداره بریم سر درس. در درسمون ما مثال یکو خوندیم که اولادی که لذی ناشترا و زلالت بل خدا تجارت و هم. که گفتیم که اختارو تشبیه شده به اشتراو اختارو هست شده اشتراو جاش نشسته. از زلالت بلهدا هم از زلالت بلهدا هم گفتیم قرینه اصدار است بعد گفتیم بعد از اینکه که قرینه تمو شده فما به حد ملائم با اشتراعه یعنی مشبهان به پس این میشه استعاره مصرحه طبعیه مرشهه چون تبای به تجارت از ملایمات خریدن مناسب با خریدن خب این بحث تمام شد یعنی ما چیزی توی این یک مثال ندیدیم و این مثال سالم از تو سر جای خودش بریم مثال دوم قال البختری آقای بختری گفته یا عدونت تهیته یا عدونت من منبعیدن الا قمرن منل ال ایوان بادن یو عبدونت من بعیدن الا قمرن منل ال ایوان بادن میگه آقای بهداری این طور گفته دیدید که مثلا این پادشاهان قصری داشتن قصرشون جلوش بالکونی بوده یک دسمت بالکن بوده ای پادشاهان می در این بالکن می و افراد وارد بر اونها که می شدن از دور به اینها سلام میکردند اظهار ارادت میکردند اینها هم دستشون رو تکون می دادند این متداول میتونستید تصور میگه یعدون ادا میکنند کنند به جا می آورند فعل مردمان اد یعنی سلامشان را یا اد دونه تهیته یعنی الفلام از مضافله تهیت و سلام خود را ابراز میکنند من بعیدن از راه دور از راه دور اونها ابراز سلام میکنند به کی؟ به یک ماه به یک ماه خب مگه کسی به ماه سلام میکنه داره این مردم را میگه میگه این مردمان دارن تهییت و سلام خود رو ابراز میکنن به ماهی داره همونها رو میگه دیگه چون چون شعر داره میگه این مردم میان وارد به کاخ میشن و سلام خودشون رو به ماه عدا میکنن خب این قرینه یا عدونت من بعیدن به ما میفهمونه که این قمر قمر واقعی نیست یعنی ملکن کل قمره پادشاهی که مثل قمره آه در بلند مرتبگی و زیبایی مثل ماهه بعد اون قمر اومده جای ملک نشسته بستاره مسره هست در اسمم هست اصلی است قمر اسم دیگه قرینش هم یادونت تهییت من اندعیده بعد میگه منل ایوانه بادن این بادن صفت قمرنه منل ایوان متعلق به بادنه بدا یبدو یعنی زهره بادن اسم فاعلشه مثل غازن یعنی ظاهر شونده به قمری که ظاهر شده است ظاهر شونده است منل ایوان از اون ایوان نشون داده اون ایوان یعنی از اون بالکن به ماهی که ظاهر شده است از آن بالکن این ظاهر شدن از بالکن آمدن به بالکن و ظهور در اون بالکن از خصوصیات اون خلیفه است یا از خصوصیات ماهه قطعا از خصوصیات اون خلیفه است پس این منل ایوان بادن ملائم با اون ملکه ملایم با قمر نیست پس این مثال اینطوریه ملک پادشاه تشبیه شده به قمر در بلند مرتبی و زیبایی ملک حذف شده قمر به جاش نشسته قرینه دو التهیت من بعیدن بعد که استحاره تموم شده گفته من الحیوان بادن قمری که از این ایوان سربرآورده از این ایوان ظاهر شده این از این ایوان ظاهر شدن ظاهر گشته است از این ایوان ظهور پیدا کرده در این ایوان این ظهور از این ایوان معادل با مناسب و ملائم با قمره ملائم و مناسبه با اون ملکه پادشاه که میاد تو ایوان ملائم با قمر نیست قمر از داخل ایوان سردر نمیاد پس یک بار دیگه ملک تشبیل شده به قمر در رفعت بلند مرتبگی و جمال زیبایی به قرینه یا عدونت تهیت بعیدن ما ملک رو حذف کردیم قمر رو به جاش گذاشتیم این شد استاره مسرحه چون مشبهان به اومد جای مشبه و چون قمر اسم جامده میشه اصلیه مصرحه اصلیه بعد از اینکه استاره تموم شده گفته منل ایوان بادن قمری که از ایوان ظاهر شده این از ایوان ظاهر شدن ملائم با اون ملک پادشاه و ملائمه با قمر نیست چون ملائمه با مشبه در کلام آمده استعاره تضعیف میشه و میشه استعاره مجرده پس استعاره مصرحه اصلیه مجرده تمام شد بریم مثال سوم. و قال تعالی انا لما تقلماؤ هملناکم فل جاریته خدایی تا حالا گفته انا ما لما تبا زمانی که تغیان کرد الماء اون آب یعنی اون آبی که ما از آسمان باروندیم و از زمین چشمه ها جوشید تو داستان نوح میگه اون آب فراوانی که ما در زمان نوح از آسمان باریدیم و از زمین جوشید خب وقتی که اون آب طغیان کرد خب همان ناگم ما هم کردیم شماها رو فل جاریته در اون کشتی کشتی که نو ساخته بود الجاریه یعنی از سفینه الفلام داره یعنی اون کشتی نو پس گفت مردم زمان نو آهای شماها چرا نعمت رو فراموش کردید ما وقتی که آب اون آبی که شما دیدید خیلی توقیان کرد ما شما رو سوار کردیم تو اون کشتی و نجاتتون دادیم ما شما رو نجات دادیم و الا اون طوفان شما رو هم بگید می برد می میکرد پس بنابراین ما لطف در حد شما داشتیم و شما رو زنده نگه داشتیم این معنای آیه انا نا اسمش لما تقا این جمله شرطی خبر اناست تقا فعل شرط حمل ناکن جزای شرط ولی خب نگاه کنید تقا فعل دیگه مزارشم یتقا مسترش هم طوقیان. این یعنی نافرمانی نافرمانی کردن توقیان یعنی نافرمانی کردن در مقابل اطاعت مطیبودن بودن، رو سرکشی میشه، معناش سرکش شدن تقایتقا یعنی سرکشی کرد عصیان کرد نافرمانی کرد این فعل این فعل تقا مال انسانه مالا آدمه لذا خدا هم تو قرآن میگه انل انسان لیتقا ان رآه و استقنا انسان سرکش و تقیان میشه سرکش و تقیانی عمل میکنه موقعی که خودشو دست پر میبینه مستقلی میبینه ان الانسان یَتْقَانَ دوست شده نه؟ اِذْحَبَا فرعون، فِرْعَونَ اِنَّهُ موسا هارون برید سراغ فرعون چون تقیان کرده یعنی از اطاعت خارج شده شورش داره میکنه اوسیان کرد پس آ، مال چیه؟ مال انسانه کسی که اطاعت نمیکنه میشه تاغی، تاغوت، سیغه مبالغش اینجا برای آب به کار رفته آب که توقیان نمیتونه بکنه توقیان مال جاییه که کسی اراده دارد میفهمه زیر بار نمیره میزنه زیر حرف کسی و اطاعت نمیکنه. خب به قرینه الماء دارن پوزیت میدن دیگه معلومه به قرینه الماء ما میفهمیم که اینجا تقاب معنای خودش نیست ولی تو اون ان الانسان الیت هست اون انسان اینجا میفهمیم به قرینه الما که تقاب معنای خودش نیست خود برای آب باید چی به کار می برد خدا؟ اینجا برای آب باید این رو به کار می برد زاده زاده زیاد شد کس با سه نقطه فراوان شد یعنی اگه فرموده بود انا لما زاد الماؤ یا کسر را الماؤ عمل حمل ناکن هیچی نبود و زاده و کسره تشکیل شده به تقا زاده و کسوره تشکیل شده به تقا به قرینه چی به قرینه الما به قرینه بگو گفت بعد زاده و کسوره هست شده تقا به جاش نشسته زاده و کسره حذف شده تقا به جاش نشسته میشه استاره مسرحه چون در فعل تقا میشه طبعیه استاره مسرحه طبعیه قبلش باید زیادت و کسرت رو تشبیه کنیم به توقیان تو ذهنمون که میشه بعد نگاه میکنیم تو آیه اینا لما, اینا لما تقل ما او حمل نا کن فلجا. چیزی که ملائم و با زیاده یا کسرت یا توقیان باشه تو عبارت وجود نداره بارت وجود نداره پس این مثال شد مثال مصرحه طبعیه مطلقه اما مطلقه از کدوم نوعش؟ نوع یکش که نه با مشبه رو دارد نه ملائم با مشبه بهران که این گفتیم از همه بیشتره ملائم با هیچ کدوم نیست اِنَّا لَمَّا تقل ما او همال لاکم فلجاریه استاره مصرحه طبعیه درود از نوع مطلقه چون چیزی که معادل با مشبه یا مشبهان به باشد بعد از اتمام استاره یعنی بعد از علما دیده نمیشه پایین تونه حاشیه ایوان رو معنا کرده خوب نگفته ایوان بالکنه. همین بالکونی که جلوی خونه ها هست تو ما میدونیم چی اما این گفته عل ایوان مکانون مرتفع اون ثل بیت یه جای بلندی است در خانه یوشلث علی که روشن نشسته میشه حالا فکر می‌کنه تو خونه یه جایی رو مثل منبر و مثل تخت درست می‌گن روش میشه این جلوی این معنای ایوان معنای دقیق نیست حالا ما می‌دونی ایوان چیست نگاه کنید متن رو متن رو از بحث فیل امثلت استعارات استعالاتون فی, فی اشترو و به معنا اختارو و فی قمر الذی یرادو بهی شخص المندو الملك و فی طبا به معنا زاده که من گفتم بزاده گفتن کسوره هم گفتن به معنی زاده یا کسوره و قد استوفت استوفت یعنی گرفته است اخذت و قد استوفد استوفا درست شد از وفا استیفا یعنی گرفتن تمام حق تمام اون چیزی که میخوای بگیری میشه استیفا میگن یعنی حقشو استیفا کرد یعنی همشو گرفت و قد استوفد کل استعارت قرینتها هر استعارهی قرینه شو به طور مطلق به طور کامل گرفته همشون اون اولی اشتراب زلالت بالهدا دومی یعدون تهیته من بعید العلا قمرن اون یعدون تهیته من بعید قرینه شه سومی هم الماء میگه فقرینت اولا از زلالت بالهدى و قرین تو سانیته یعدونت من بعيد و قرین تو سالسته و ازا تعملتل استعارتل اولا و ایت انها قد زکرم و احاشه اون المشبه المشبهدی میبینی که بعد از این استعاره استعارت شده چیزی اومده ملائم با مشبهده و هاذا شیعه هو و وفما رب حد تجارت رب و تجارت معادل ملائم و مناسب با اشتراه. و ایزا نظرت علاستهارت سانیته و اگر نگاه کنی به استعاره دوباره و به ها شیعا من ملاعمات می بینی که چیزی از ملاعمات مشبه توشه و خوبه منعل ایوان بادن و اون هم لفظ منل ایوان بادن و ایزا تعملت استعاره سالسه و اگر نگاه کنی به استعاره سوم و عیتبه ها خالیتا من مایولیعال مشبه دیزی و مشابه میبینی که خالی است از چیزی که ملاحظم با مشبه همون باشه یا مشبه. چیز دیگه وجود ندارد. حالا این ستاره دیدی؟ میان سر مثال بعدی. البته شما توی اون مثال سوم اونجا یادتون باشه گفتیم هر استاره مسرحه تبعیهی میشه تو قرینش استاره مکنی اصلیه درستگید. یعنی جا میتونید بگیر علماء آب تشبیه شده به انسان. انسان هست شده تغیان که از لوازم انسانه برای آب ثابت شده ولی خب این قشنگ نیست که آب تشبیه بشه به انسان درست شد بعد تغیان از لوازم انسان بیاد و داده شه ثابت بشه برای علما که میشه استاره مکنیه اصلیه در قرینه استعاره مسرحه طبعیه خوندیم که میشه استعاره مکنیه اصلیه درست کرد که اینجا ای درست کنی قشنگ نیست تمام شد لذا ذکرش نکرد مثال چهارم اینا دیگه تو مکنیهاست اولی مکنیه مرشه است دومی مکنیه مجرد است سومی مکنیه مطلب است از نوع یکش میگه و عر منایا و عر منایا و میبینم مرگ را اسباب مرگ را میبینم مرگ را المنایا جمع منی منیست یعنی مرگ میبینم که اسباب مرگ ان این رعت بکشیبتن اگر ببیند در تو پیری میبینم که اسباب مرگ اگر در تو پیری ببیند جعلت که قرار میدهد تو را مرما یعنی سیبل هدف قرار میدهد تو را سیبل و هدف نبلها تیرهایش المتواتر تیرهای پیدرپیش. پیش میگه اسباب مرگ اسباب مرگ مثل مثلا مریضی ها نمیدونم بیماری های مختلف اینا اسباب مرگ دیگه اینا اگر توی تو پیری ببینه ببینه تو پیری تیرهاشو یکی یکی میندازه. مرگ اگر ببینه تو پیری آماج تیرهای خودش داره میکنه تیرهای پیدرده پی. ها میبینی دیگه طرف پیر فشار خون داره نمیدونم فرض کنید که دیابت داره فلان داره پا درد داره کمر درد داره یه جوان که هست نه اصلا اسباب مرگ طلابش نمیاد پیر که بشی همین پیری رو تو تو میبینه میبینه تو تومه خوبی هستی انوال تیرهای خودش رو اسرائیل به طرفت پرت میکنه معنیش و ارال منایا ارا یعنی باور دارم یقین دارم ال منایا مفعول اولشه و ارا ضمیر یقین دارم که مرگ این انرعت به کشایی وطن جهلت که با نبله المتواتری این جمله شرطیه مفهول دومه باور دارم که مرگ اگر در تو پیری ببیند تیرهای متواطرش را به تو پرتاب خواهد این انرعت به وطن شاهد ماست رعت فایلش کیه منایا مگه منایا یعنی مرگ میبینه که میگه اگه مرگ ببیند در تو پیری مگه مرگ میبینه مرگ یه مفهوم یه واقعیتیه که میفهمیمش اما چشم نداره که مرگ مردن چشم نداره که ببینه میگه اگر مرگ منایا اسباب مرگ در تو پیری ببینه خب پس هیه که مرجع زمیر منایاست تشبیه شده به انسان که می‌بینه تشبیه شده به انسان که میبینه. انسان حذف شده یکی از لوازم خاصه انسان چیه دیدن بعد برای مرگ المنایا ثابت شد استحاره میشه مکنیگه شد یا نه میگه اگر مرگ در تو پیری ببیند درست اینجا ان رأت بکه اگر مرگ در تو پیری ببیند مرگ المنایا که زمیرهی است تشبیه شده به انسان انسان شده یکی از لوازن خاصه انسان دیدن اومده برای مرگ ثابت شده گفته مرگ ببیند میشه استارهیه بگو مکنیه استارهی مکنیه چون اون زمیرهیه اسم جامده میشه اصلیه منایا اسم دیگه اسم جامد. میشه اصلیه قرینه چیه؟ اثبات رویت همه رعد که آمده اثبات رویت برای منایا میشه قرینه پس شد استان مکنیه اصلیه ولی بعدش گفته جعلت که مرما نبله المتباطری آماج تیرهای پی در پیش قرار می دهد این آماج تیرهای پی در پی آماج تیرهای پی در پی قرار دادن معادل با منایاست که مشبهه هیه یا ملائم با انسانه که مشبهم هم بهه ملائم با انسانه آماج تیر قرار دادن به هدف زدن این کار انسانه کار مدنیست چون این ملائم و مناسب با مشبهم هم بهه پس میشه مکنیه اصلیه مرشه تو این بیت زمیر داخل رعتی که است و برمیگرده به منایا تشبیه شده به انسان انسان حذف شده یکی از لوازم خواستش رعت یعنی رؤیت دیدن برای هیه ثابت شده گفته انرعت بکشه چون اون هیه که برمیگرده به منایا اسم جامده پس این میشه استعاره مکنیه اصلی بعد از تمام شدن استعاره که این شیبتن دیگه تا اینجا تمام میشه این جعلت که مرما نبله المتواتری تو را آماج تیرهای پی در پی خود قرار میدهد ملائمه با انسان ملائمه با هیه که منایا هست نیست چون ملائمه با انسانی که مشبه بهه پس میشه مکنیه اصلیه مرشد این اولی نگاه کنید پایین میگه که الجاریه یعنی از سفینه که گفتیم النبل المتواتر یعنی الكسیر المتوالی پشت سرهم هم اینم من دو دو رو ببینید میگه کان فلانو فلانی یا آقای رو میگه که اون آدم خطات بوده خطاتا دید، اون قلم دارند نی بعد اونو در جوهر میزنند و روی کاغذ میکشند می و وقتی که روی کاغذ میکشند مرکب رو کاغذ کشیده میشه و یه صدایی هم جیروجیر میکنه این قلم که می نویسن این صدا رو داره این دانستی قلم در دواز زده میشه روی کاغذ کشیده میشه مرکب رو روی کاغذ می ریزه و به قول خودمون یه صدای جیروجییریم رو این نوشتن قلم روی کاغذ داره اینو داره می میگه فلانون کان فلانون. فلان کس اکتبن ناس کاتبترین مردمه نویسنده ترین شخص فلانیست که ازا شره و هو زمانی که بنوشد قلمش یعنی مست بشه قلمش شره و هو یعنی قلمش بنوشد زمانی که قلم او بنوشد یعنی مست بشه من دواته از دواتش بنوشد از دوات او. مست دوات بشه او این او غلط اینجا باید واو باشه و غنا فوق قرطاسه این قلمه از دوات مست بشه یعنی پر از مرکت بشه مرکت برداره و قنا غنا یعنی آواز بخونه و آواز بخونه فوقت ارتاسه روی کاغذش میگه فلانی وقتی قلمش مست مرکب بشه و روی کاغذ آواز بخونه این میشه کاتبترین شخص خب معلومه یعنی قلمش از دوات آغشته بشه روی کاغذ جیر, جیر کنه این آقا کاتبترینه شما نگاه کنی میبینی بهترین کتابت رو انجام داد یا اثر هنری اختیه ابداع کرد اخترار کرد شد پس معنا رو فهمیدید کان فلانون اکتب ناس فلانی کاتبترین مردم زمانی که قلمش بنوشد و مست شود از دواتش و بخواند بر روی کاغذش یعنی روی کاغذ که اون جلوشه این اینجا قلمش بنوشد مست بشه قلمش مست بشه یا قلمش آواز بخونه قلم نه مست میشه نه آواز میخونه آواز خوندن و مست شدن نوشیدن از خواص انسانه پس در یکیش که ما مطرح بکنیم تو اون یکی امینه دوتاست یکی شره و قلم و هو یکی قنا یعنی قلم و هو داخلش میخوره به قلم شره و قلم دننا قلم هو. این دوتا اولی رو میگیم قلم یعنی قلم تشوی شده به انسان انسان حذف شده یکی از خصوصیات انسان که نوشیدن است شرب و نوشیدن و مس شدن برا قلم ثابت شده همین اثبات شربه میشه قرینه استاره قلم تشبیش شده به انسان انسان حسب شده یکی از لوازم شربه برا قلم ثابت شده اثبات این لازم میشه قرینه استاره استاره میشه مکنیه و چون قلم اسمه اسم جامده میشه اصلیه این تا شربه هو تا اینجا او قنا قنا قلمهو باز قنا تشبیه شده به انسان چیز؟ قلمهو تشبیه شده به انسان که زمین داخل قنا یعنی قلم دیگه اون هوایی که توشه حور یعنی قلمو تشبیه شده به انسان، انسان حذف شده. یکی از لوازم انسان آواز خوونن فلا کردنه. این آوردیم برای قلم ثابت کرد. اثبات این لازم میشه، قرینه استاره استاره میشه مکنیه چون اون زمیر به او برمیگرده و جامده میشه استعاره مکنیه اصلی دوتا بعد از اینکه که استاره تموم شد گفته من دواتی هی و فوق قرتاسی هی. حرف از دوات و حرف از قرتاس دوات یعنی مرکب قرتاس هم کاغذ این کاغذ و مرکب ملائم با قلمه یا ملائم با انسانه از ملائمات و مناسبات قلمه قلم سر و کار داره با دوات و بقول خودمون کاغذ این این من دواتی و فوق قرتاطهی ملائم با مشبهه فش میشه استعاره مکنیه اصلیه مجرده ملاحبه با مشبه میشه استعاره مکنیه اصلیه مجرده باز به طور خلاصه میگم یعنی تو یه تیکه قلم تو یه مرحله تشبیه شده به انسان انسان از شده شربه که از خواستشه برای قلم ثابت شده اثبات این لازم قرینه استاره استاره مکنیه چون مشبهدهح شده. اصلیه چون قلم اسم جامد تو دومی زمیر قلمهو که تو اخل قناست. تشبیه شده به انسان انسان حذف شده قنا آواز خوندن که از خصوصیات انسانه برای اون قلمهو یعنی زمیرش ثابت شده این اثبات میشه قرینه استاره استاره میشه مکنیه و چون اون زمیر که به قلمهو برمیگرده جامده میشه اصلیه بعد از تمام شدن استاره من مندواتیهی داریم و فوق قویر داریم اینها ملائمه با قلمه یعنی مشبه آه ملائمه با قلمه یعنی مشبه چون ملائمه با قلم است و مشبه پس میشه استعاره مکنیه اصلیه مجرده تمام شد بریم سر سومی سومی میگه و قال زبن بن عنیفن آقای قریزبن عنیف گفته پایین میگه که قریزه بن انیف، هو قریزه بن هو من شعرا الحماسه از شعرای حماسه است و هو شاعرون اسلام از شعرای دوران اسلامی از شعرا حماسه است این شعرا الحماسه منظورش این نیست که شعرا الحماسه یعنی حماسه سراس نه نه الهماسه اسم کتاب ابو تمامه یه دیوان شعر اومده شعرها از جاهلیت تا زمان خودش که قرن چارمه همه رو گلچین کرده گلچین شعر بهترین شعر جاهلی بهترین شعر دوران مخزرمین دوران اسلامی این شعرهایه که زیبا و درجه یک بوده چون خودشم ابو تمام شعر درجه یکیست خب تونسته گلچین شعر خوبی کنه حالا هر شاعری که شعرش تو این کتاب هماسه باشه انگار دیگه این مدال افتخار گرفته ابو تمام شعرش رو مهر تأیید زده مهر استاندارت زده نظام بهش میگن این از شاعرای هماسه است یعنی از شعرهاییه که آقای ابو تمام در کتاب خودش هماسه اون شعر رو نقل کرد این برزول اینه میگه که این آقای قرعی زبن اونیف گفته قومون. یعنی هم قومون یعنی ها اولائه قومون این قوم من قومی هستند برست شد قومون پس این قومان خبر مبتده های محزوفه یعنی اولائه که یا قومی یا هم قومون که متشون داشته میکنه آنها قومی هستند جماعتی هستند ازش شر و عبدان ناجزه لهم تارو و علیه زرافاتن و بختانه این جمله شرطیه که ازش شر و عبدان لهم فعل شرط تارو زرافاتن و بختانه جزای این جمله شرطیه صفت قوم آنها قومی هستند که میکنم یکه صفت ساز یعنی مابض صفته آنها یعنی مبتده قومی هستند خبر که که الان میخون از شر رو از شر خود لغتش یعنی ناملایمات ولی اینجا معنا جنگه چون گاهی شر میگن و اراده جنگ میکنن یعنی شر توی لغت به معنای جنگ هم اومده میگه قومی هستند که انگامی که ناملایمات یعنی جنگ عبدان عبدای یعنی ازهره ظاهر کرد نشان داد هنگامی که نشان دهد شر ناجزی ناجز یعنی ناب ناب یادتون خوندیم دندان نیش بود که دو طرف دهان حیوانهای های درنده هست آه؟ اون بهش ناجز هم میگن که اگه مثلا در شیر و پلنگ نگاه کنید دو تا دندان نیش بلند جلوی دهانشون دارن که با اون پاره میکنن اون میگن ناجزین که چهار دو تا از نواجز دوتا بالاست دوتا پایین اون بالایی ها بلندترند درست شد میگه که قومی هستند که از شر و عبدان ناجزه هله قومی هستند که وقتی جنگ دندانه هایش را به آنها نشان دهد جنگ نیش خود را به آنها نشان دهد مثل پلنگ و شیر که دندونشون رو نشون میدن میگه قومی هستن که اگر جنگ دندان به آنها نشان دهد پار و الیه پرواز میکنن به سوی جنگ پرواز میکنن به سوی جنگ یعنی مشتاقانه میرن سوی جنگ به سرعت میرن به سوی جنگ الیه یعنی شر میرن به سوی اون شر زرافاته حال است از و در حالی که جماعت جماعت گروه گروه هن و وغدان و در حالی که تک تک هن. یعنی فرض وارشون بشنوند جنگ اگر یه جا همشون با هم جمع بودن چند نفر, چند نفر اینا. تک هم بایستاده میشنوه جنگ را میفته دسته دسته یا تک تک جماعتن و وغدان یعنی واحدن واحدن یا جماعتن جماعتن فرقی نمیکنه بشنوند تبل جنگ کوبیده شد دسته دسته یا تنها تنها به طرف جنگ به سرعت حرکت میکنن تارو الهیه یعنی اسراوه الهیه این قومان ازش شر و عبدان ناجزهی زمانی که جنگ دندان به آنها نشون بده آدم میفهمه یه دیگه اینجا شر تشبیه شده به چی؟ به حیوان مفترس شیر پلنگ شر تشبیه شده به حیوان مفترس بعد کدوم هست شده حیوان مفترس چی آمده یکی از لوازم خاصه حیوان مفترس که دندون نشون دادنه آه؟ این ابداع ناجزین از خصوصیات حیوان مفترسه اینو آوردیم برای که جنگه ثابت کردیم استاره میشه استاره مکنیگه استعاره میشه استعارهی بگید مکنیه و چون در اسم شر میشه اصلیه و بعدش چیزی نیست که ملائم با شر باشه یا ملائم با حیوان مفترس باشه چیزی وجود نداره که ملائم با جنگ باشه یا ملائم با هیچ چی پس میشه استعارهی مکنیه یه اصلیه یه مطلقه یک بار میگم شر یعنی جنگ تشبیه شده به حیوان مفترس حیوان مفترس حث شده ابداع ناجزین عبدان ناجزه‌ای لهم از خصوصیات حیوان مفترس برای شر یعنی جنگ ثابت شده اثبات لازم میشه قرینه استاره اثبات لازم میشه قرینه استاره استعاره میشه از نوع مکنیه چون مشبه در کلام هست مشبهان به هست شده لازمش آوردیم مکنیه و چون شر اسم جامده میشه اصلیه و چون بعد از اتمام استار چیزی ملائم با مشبه یا به بهتر کلام نیامده است میشه مطلقه تمام شده. حالا نگاه کنید پایین رو میگه ناجزان یعنی اننابان و ابداع و شر ناجزی ظاهر کردن شر شر دندان نیشش را ظاهر کند میگه این کنایتون معناش اینه کنایتون ان شدتی هی و صوبته یعنی جنگ خیلی شدت پیدا کرده و سخت شده. میگه یسف توصیف میکنه قوم خودشون بل اقدام به این که اینها ها میکنن حمله بر میشونن الان مکاره بر سختی ها شدائد یعنی بر جنگ حمله بر میشونن ولی اسرائی یسف و هم به جای ولی ولی اسرائیل ول شدائد شدید و سختی که پیش بیاد شدائدی که پیش بیاد با عجله به سرعت به سویش میرند و انهم لا یتواکلون و لا یتخاذلون حرفش اینه که این قوم من لا یتواکلون کار رو به همدیگه دیگه پاسکاری نمیکنن تواکل القوم یعنی این انداختن اون و اون کردن این اونو وکیل کرد اون اینو میگن تواکل القوم یعنی گردن همدیگه دیگه انداختن لا یتواکلون و لا یتخاذلون یتخاذلون خزل یعنی پشتشو خالی کرد پشتیبانی نکرد جایی که لازم بود تخازل القومو یعنی پشت هم رو خالی کردن همدیگر رو یاری نکرد لا تخازلون یعنی پشت هم رو خالی نمیکنن پس معنا این میشه که این قوم من کارو به گردن همدیگه نمینداند هر کسی برسه انجام میده و لا تخازلون و از طرف دیگه پشت همدیگر رو خالی نمیکن این حتما بلدید قومون از اشر و رو چون بعد از از رو آمده این از رو فائل یه ابدای مقدره که این ابدا تفسیرش میکنه آه، تو باب اشتغال این رو خوندید چون بعد از ازای شرطیه باید فیل بیاد اینجا این ابدا تفسیر میکنه یک ابدایی رو قبل از از اونم بحث نهبیش که براتون گفتیم حالا بیاید توی بحث ول امثلت و از سلاست تو از و تشتمل و علا استعارات مکنیت یه از زمیر فی رعت زمیر در رعت اللذی یعود و علا المنایا که به منایا برمید علتی شب بهت به انسان منایا شده به انسان بعد انسان هز شده رویت که از خصوصیات انسانه برای اون زمیر سابق شد و قلم اللذی شب به انسان عیزه. و شر الضی شب به حیوانن مختص که ما اینا رو توضیح و قد هم مثل گل استائنات قرینه و هر سوالی هم قرینه شو گرفت. از هیه فل اولا قرینه در اولی اثبات و رؤیت لرمنایات. اثبات رؤیت برای منایا یا یعنی زدیره این قرینه بود. و ثانیت اثبات شرب و القناق منظورش از تقنی است. چون غنام مسترش درش نیست مسترش تقنی اثبات است ثبات و شبه و تقنیته وال بناین آواز خوندن حال قلم و ف سالسط و ابداع ناجزه لشر و حزار تعملتر رعیت اول تعمل استارت از اولا اجعمللت ما یلار مل مشببهی، با مشببه و هوت جعلت که بر با نبلحل متوااط با انسانه و انل استعارت از ثانیت اجتملت علا مایولایم المشبه و خوبه من دواتگی و فوق قرتاسی این دوات و قرتاس ملائم با قلم ملائم با انسان نیست ملائم با مشبه و انل استعارت از خلط من مایولایم المشبه اول مشبه دید نه ملائم مشبه داره نه مشبه آن میشه استعاره مطلقه از نوع یکش بل استعارت و لتی منن نوهل اوله ما مرشهتن. چون تقویت شده ملائمه با مشبه به که جوز قلیست اومده ولتی منن نوهستانی توسن ما مجرده چون تضعیف شده چیزی اومده که ملائمه با مشبهه و ما تو استعاره میخواییم مشبه کلند و کلن به فراموشی بسپریم مشبه و قصد داریم بندش کنیم و جا بندازیم نو و واللتی منن نوع الثالث تو سمو مطلقه درست شد بعد اینا رو خوندیم دیگه براتون که الاستعاره المرشحه تو موضوعی که رمها ملائم المشبه به ولی استعاره المجرد تو موضوعی که رمها ملائم المشبه بله استعاره تون مطلقه تو ما خلت من ملائمت المشبه به اول مشبه که گفتیم نوع یکش گفته و نوع دویشون پایین دو آشیه میگه که میخونم امروز بعد گفتیم یادتون باشه استعاره باید تمام بشه و بعد از تمام شدن ما میریم سراغ ملائم مناسب که هست یا نیست پس بنابراین قرینه استعاره رو نباید اشتباه جزه ملائمات کرد آه. چون قرینه استعاره مسلحه همیشه ملائم با مشبهه که بگیم مجرده بشه قرینه استعاره مکنیه ملائم با مشبهان به چون از لوازه میشه بگیم بشه نه قرینه رو بذاریم کنار بعد از اون و لا یعتبر الترشيح او بعد به اعتبار نمیشه ترشيح و تجرید مگر بعد از اینکه استعاره تموم بشه به این واسطه که بگیره قرینه خودش رو حالا به شکل لفظی یا به شکل حالی قرینش بیاد لا یعتبر و او التجدید الا بعد ان تتم الاستعاره به استیفاءها قرینتها لفظی یا حالی یاتن او حالی وله آزالا تو سما غلینت و تصریحیت تجریدن ولا غلینت و مکنیت تشریح حالا یه مثال گفتیم که اون نوع دوم مطلقه خیلی کم استفاده میشه من توی جزوهی ام که گفتم براتون بیان کردم درست شد مثال هم براتون زدیم و حتی گفتمم که با قول خودمون ملائم مشبه و به باشه نمیشیم بشمریم بلکه میگیم ملاائم این هست ملاائم مناسب ممکن ملاائم این دو تا باشه ملاائم اون یکی باشه ایراد نداره چون ملاائم هر دو طرف هست میشه مطلقه نگاه کن آشیه یک رو من نوع الاستعاره المطلقته از نوع استعاره مطلقه الاستعاره التي تشمل انا ترشیه و, و تجديد من اونیه که هم ترشيح داره هم تجرید داره من یعنی هر دو تاش تا هست مثالها فتح مثالش در تصریحیه اینه مثالش در تسریحیه یعنی اگه بخواییم این مثال رو بزنیم باید این مثال رو ببریم بذاریم بعد از اون لما ما فلجاریه. اون میشه نوعه علفش این میشه نوعه بش درست شد نتقل خطیبو به دره بر راقتن سمینتن بر تاحت له میگه نطق الخطیب الخطیب یعنی این آقای سخنران نطخ کرد این آقای سخنران به در و این آقای سخنران در و رو, رو نطخ کرد او در و گوهر نطخ کرده یا کلمات و جملات کلمات و جملات رو گفته دیگه در و گوهر که نطخ نکرده ما بیگیم از دهانش در و گوهر بیرون اومد همینو داره میگه دور گوهر از دهنش بیرون نیومده بلکه از دهنش چی بیرون اومده کلمه و کلمات و جمل ها پس جملات و کلمات تشوی شده به دورر. جملات و کلمات کلمات و جملات حذف شده دورر به جاش نشسته قرینش چیه نتقل خطیب از اون نتقل خطیب ما فهمیدیم که منظورش بگید کلمات و جملات برست شد که تشبیه شده به دورر کلمات هست شده دورر به جاش میشه دورر چون اسمم هست بگید میشه مسرحه اصلیه قرینه چیه؟ نتقل خطیب آه. قرینهش نتقل خطیب چون؟ این تا اینجا دیگه این علای ساره تموم شد قرینه بعدش نگاه کنید میگه براغتن سمیلتن براغتن یعنی درخشان سمینه یعنی گرانبها این درخشانی و گرانبهایی از خصوصیات کلمات و جملات که مشبهه یا از خصوصیات در و گوهره که مشبهان, بهه. مشبهان به این اگر به تنهایی بود میشد مرشهه براغتن سمینه بعد میگه فرتاحت لها الاسما پس آرامش یافت به خاطر این در روگوهرها گوشها گوش با کلمات دو آرامش پیدا میکنه یا در روگوهر با کلمات آرامش پیدا میکنه لذت میبره پس این فرتاحت لها الاسما آرامش یافت با آن گوشها این ملائمه با کلمات و جملات ملائم با مشبه میشه چی؟ بگید میشه تجرید اون براغتن سمینتن میشه ترشید فرتاحت لحل اسما میشه تجرید اون معادل با براغتن سمینتن ملایم با دورره این فرتاحت لحل اسما ملائم با مشبهه یعنی کلمات و جمل چون ملائم با هر دوتا هست این میشه مطلقه نوع دو مطلقه تو. حالا دیگه نهید بگید براغتن سمیلتن دوتاست این فرطا حد لحل یکیه بس بگیم این ترشیه این زیاد نه نه نه دیگه فهمه میکنه ملاهم اینو داره ملاهم اونم داره شد نگاه کن و مثالها فلمکنیگته مثالش در مکنیگه قصف الموتو شبابهو قصف و شبابهو قبل ان یو زهره و یسل الالکوهولته اینو فرض کنید روی اعلامیه مرگ مثلا جوانی کسی که هست نوشته نوشته قصف الموتو شبابهو قصف یعنی پرپر پر کرد در هم کووید اینجا میشه معنیش پرپر کرد. پر. کَثَفَ الْمَوْتُ شَبَابَهُ. هو. شباب یعنی جوانی. پرپر پر کرد جوانی او را مرگ. پرپر کرد جوانی او را مرگ. همین قد اگه گفته بود استوره چی شد؟ می شباب جوانی او تشویش شده به چی؟ به گل او؟ گل حصف شده یکی از لوازمش که قصفه پرپر پر کردنه این برای جوانی ثابت شد الان اگه بگیم جوانی او پرپر پر شد مرد جوانی او رو پرپر پر کرد همه شما متوجه میشید که مرگ تشبیه شده به گل گلی که پرپر پر شد بعد گل هست شده پرپر پر کردن که از خصوصیاتشه برای گل چی برای جوانی ثابت شد پس تا اینجاش میشه اثاری چی مکنیه و چون شباب هم اسم جامده میشه اصلی قرینه ساده چیه اثبات قصف برای شباب اثبات پرپر پر کردن برای شباب میشه قرینه استعالی. پس پرپر کرد مرگ جوانی او را چی به چی تشبیه شد شباب جوانی به گل به الوردتو گل هست شده قسم که از لوازمشه برای شباب ثابت شده این استعاره مکنیه و چون شباب اسم اصلیه بعد گفته مد جوانی او رو پرپر کرد قبل ان یوزهره قبل از اینکه شکوفا بشه قبل از اینکه شکوفا بشه حالا شکوفا شدن یعنی قنچهاش باز شدن شکوفا شدن این از ملایمات جوانیه یا از ملایمات به قول خودمون گله قبلا قطعا از ملایمات گل هستش از ملایمات جوانی نیست اگر این به تنهایی بود درست شو میشد مشبه هم ملایمش و, و اومده ترشی قبلن یا و یه سلال الال کهولت یعنی سن میان سالی. بین چهل یعنی تقریبا میشه بگی که بین مثلا چهل تا شست این کهولته سن کهولته بعد از اون دیگه شیخوخت دارست شو قبلش هم که تا 40 سالگی جوانیه میگه قبل از اینکه برسه به سن کهولت به سن پیری این قبل از اینکه برسه به سن پیری این رسیدن به سن پیری ملائمه با جوانی یا ملائمه با گل خب ملائمه با شباب پس شباب تشبیه شد به گل گل حذف شد یکی از لوازم خاصی گل پرپر پر شدن قصد برای شباب ثابت شد شد استعاره مکنیه اصلی بعد قبل ان و این شکوفا شدن ملائم با هم بهه و یس لیل الکحولته ملائم با مشبهه یعنی شباب شد چون هم ملائم با مشبه رو دارد و هم ملائم با مشبه هم ما میشه استعاره مطلقه از نوع دوم تمام شد حالا تمارین دیگه به قول خودمون ساده هستن شما میتونید نگاه کنید و ما هم بعضیش رو برای شما حل میکنیم مثلا تمرین سوم رو نگاه کنید حالا من آخه تمارین باید به یه شکلی نوشته بشه که از به قول خودمون آسون به سخت بیاد یعنی همش که آخه خوندیم آسونه از آسون به سخت بیاد یا آسون تر به آسون بیاد که اون شخصی که داره حل میکنه راحت تر به قول خودمون حل کنه درست شو؟ نگاه کنید چی میگه؟ میگه انی شدید و لعتش علال غایی شما اینو میگید میگید من شدیدن تشنه دیدار شما اینی شدید و لعتش من شدیدن تشنه دیدار شما دیدار که کسی تشنش نمیشه تشنه شدن مال چیه؟ مال آبه یعنی اگر گفته بود الان انی شدید و لعتش علال ما هیچی تو این عبارت نبود من شدیدن اتش به آب دارم بودن آب رو بگفت انی شدید و لعتش علال ما هیچی نبود اما انی شدید و لعتش لقائک علال... من شدیدن تشنه دیدار شما این توش یه چیزی هست چی هست میگیم اینجا چی باید میگفت میگه باید میگفت انی شدید ول اشتیاق الاله اگر گفته بود شدید ول اشتیاق الاله واقعم هیچ چی توش نبود من شدیدن مشتاق دیدار شما شوق دیدار شما رو دارم دوست دارم هیچ توش نبود اگه گفته بود انی شدید ول اشتیاق الاله پس چی شده اشتیاق اشتیاق تشبوی شده به اتش در چه چیز اشتیاق تشوی شده به آتش. در اینکه هر دوتا آدم میخواد به مطلوبش برسه میخواد هر دو توش به مطلوبش اشتیاق داره به مطلوب برسه اون هم اتش داره به مطلوب برسه ما ولی در آتش جزء ملموساته جز چیزایی که آدم محسوسه براش جفت شد یا نه یعنی جزء چیزایی که درگشون این اتش برا همین شده مشبهان به پس اشتیاق تشبیه شده به اتش در اینکه که هر دوتا میخوان به اون نقطه که دوستش دارن برسن ولی در اتش خب بله بوجدانیه یعنی آدم از درون خودش این احساس رو میگو شده مشبهان به. بعد اشتیاق هست شده اتش به جاش قرینه چیه؟ اله لقائک این قرینه اله لقائک چون به دیدار شما این دیدار شما با اشتیاق سازه ما از این فهمیدیم که آتش به معنای اشتیاقه پس اشتیاق تشبیه شده به آتش در جهت رسیدن به مطلوب این واژه شبهه مولانا موقع مطلوب شده بعد اشتیاق حل شده آتش به جوش نشست اشتیاق حل شده آتش به جوش نشست آتش چون اسم جامده میشه استعاره مصلحه اصلیه آیا چیزی بعد از اینم اعلان قایقم که قرینه بود آیا چیزی بعدش هستش که ملائم با مشبه یا مشبهان بش بشه قبلش هست که ملائم باشه نه هیچ چی تو عبارت ملاائم با مشبه یا مشبهان به در کلام نیست پس میشه چی؟ میشه استعاره بگو مسرحه اصلیه مطلقه از نوع یک استعاره مسرحه اصلیه مطلقه از نوع یک بازم میگن اشتیاق تشوی شده بعدش اشتیاق حز شده آتش به جا شونده قرینه الا لقائک و بعد از الا لقائک دیگه چیزی نیست که ملائم با مشبه یا مشبعات بود ببینید خود در قال تعال چه چجوریه میگه شب بهل اشتیاقو برعتش اشتیاق مشبع داشتش میشد تشبیه شد به جامعه جامع جامعه اتتلو الالقایه تتلو یعنی اشتیاق شیفته بودن به رسیدن به هدف علاقمندیه به رسیدن به هدف قاید کب تو اون اتش خیلی محسوسه اتتلو الالقایه فل استهارت و تسریحیت و نسلیت مصرعت و نسلیت ولقرینت و الالقایه برینم و هیه استعارتون مطلقتون و این استعاره مطلقه است از نوعه بگید یک استعاره مطلقه است از نوع بگو یک خب این مثال مثالی بود که حل کردیم راحت بود شما چیز خاصی توش ندید یکشو نگاه کنید میگه خلق و فلانه اخلاق فلانی اخلاق فلانی بروش شد خلق فلانن. عرق عرق یعنی رقیقتر یعنی لطیفتر اخلاق فلانی لطیفتر است من انفاس سبا من انفاس سبا بروش شد سبا سبا سبا یعنی بچه گی. سبا باد سبا ما میگیم باد سبا نسیم سبا یعنی نسیمیه که صبحگاهان وقتی که شما بعد از طولو فش و هواینی که خورشید میخواد طولو کنه بیاید بیرون این نسیم از شرق میوزه این میگن به هر کسی بخوره چرتش رو میپرونه نسیم صبحگاهی این نسیم سباست درست شد نسیم یعنی همه انفاس انفاس سبا نفسهای صبحگاهی، نفسهای باد سبا ترجمهش میشه چی؟ نفسهای باد سبا نفسهای باد سبا یعنی اون نسیمهای صبحگاهی. میگه خلق فلانی لطیفتر است از نفسهای باد سبا یعنی باد سبا چطور با آدم آدم؟ سر سرحال میشه اخلاق فلانی لطیفتر و بهتر از اونه حالا نگاه کنید پس نفسهای باد سبا نفسهای باد سبا روحفزاز شادیاوره خب میگه اخلاق فلانی از اینم بهتره تا اینجا داشته باش میخوام معنا رو اول بفهمیم. بعد نسیم‌های های باد از کجا می آمد من گفتم گفتم از قسمت شرق میوزه و میاد موقع صبح حالا اگر شما حساب کنید شما توی دشتی باشید شما توی یک منطقه دشت بازی باشید قسمت شرقتون تپه هایی باشه تپه قسمت شرقتون و روی این تببه ها گل های میخک و قرنفل و گل های وحشی مثل گل یاس و این ها باشه روی این تببه ها این نسیم صبحگاهی از روی اون گل ها ردشه بیاد به شما بخوره چجور میشه؟ ده برابر شادی آورتره چرا؟ چون بوی اون گل ها هم همراه خودش بگید میاره درست شد؟ مرون شد تا اینجا؟ وقتی که شما توی منطقهی وایستدی که بازه نسیم سبا از سمت شرق میاد خود این نسیم سبا روحفظایه حالا اگر از روی گلهای میخک و گلهای یاسی که وحشی روی تپه هستند رد شده باشه و بیاد بوی خوش اونها رو میاره ده برابر بگو روحفظا میشه حالا ببینید چی میگه میگه خلق فلانی لطیفتر است از نفسهای باد سبا زمانی که قازلت زمانی که مغازله کند این باد سبا این نفسهای باد سبا مغازله کند حالا میگم مغازله چیه؟ ازهار روبا ازهار یعنی شکوفه ها روبا جمع ربوس یعنی تپه ها مغازله یعنی خوش و بش. یه عاشق و معشوقی با هم دیگه خوشو بش میکنن یکی میگه یکی اون میگه با هم دیگه ها خوشو دارن اینو بهش میگن مغازله درست شد میشه خلق فلانی لطیف تر از از نفسهای باد صبا زمانی که خوشو بش کند این نفسهای باد سوا با بگید گلهای روی تپ ها خوشو بش کنه یعنی ازولا بگذره دیگه درست شو الان اینجا نفس باد سبا نفس مال کسی که شش داره ما اینجا باد سبا رو تشبیه به چی کردیم به انسان انسان هست شده انفاس نفس درست شو؟ نفس که از خصوصیات انسانه برای باد سبا ثابت شده مشخص شو؟ این تا اینجا میشه اسداره مکنیه از بگو تشبیش شده به انسان از سبا شده به انسان انسان شده انفاس که از خصوصیاتشه، انفاس که از خصوصیات انسانه برای از ثابت شده این میشه به مکنیگه. و چون و چون سبا اسم جامده میشه بگید اصلیه چون سبا اسم جامده میشه اصلیه قبط تا اینجا بعد نگاه کنید اینجا استاره تموم شد مکنیه اصلیه سبا تشبیش شد به انسان انسان هست شد انفاظ که از خصوصیات انسانه برای سبا ثابت شد سبا اسم جامده شد مکنه بعد که میگه زمانی که خوشوبش کند با گله های روی تپه خوشو خوشوبش کردن غازلت مقازله خوشو و این ملائم با باد سباست یا ملائم با انسانه قطعا ملائم با انسان انسان ها هستند که اشقو آشقی میکنند و خوشوبش بش دارند باد سبا که نیست درست شد پس چون این ملائمه با انسانه میشه ترشیح پس میگیم باد سبا تشبیه شد به انسان انسان حسب شد انفاظ که از خصوصیات انسانه برا باد سبا ثابت شد همین اثبات قرینه استار استار مکنیه و چون سبا اسم اصلیه بعد از اینکه که استار تموم شد گفته ازا قازلت از هاره رو موقعی که خوشبش کند با گلهای بالای تپه این خوشو بش کردن ملائمه با انسانه میشه ترشی درست شد پایین میگه عربا گفتیم یعنی علاماتن کنول حالا بخونم براتون دیگه ساده است فی کلمت از سبا از سبا در کلمه از سبا و هی ریه التی تحب من مطلع شمس اون نسیمی است بادی که میوزد از محل طلوع یعنی از شرق. استعارتون مکنیه. چرا؟ چرا استعاری مکنی از اصلیه هم هست چون سوا اسمه. لحنه ها شب بهت به انسانه. زیرا سوا تشبیه شده به انسان. و حوز فعل مشبه به بعد انسان حرص شده و روم زهیلهیه بشه یه من لوازمه الخاصه و یه چیزی از لوازم خاصه انسان آوردن به هوه انفاس. و اونم نفس خواه الازی و وقعه قرینه که همین اثبات لازم قرینه مکنیه هم است و وفی قازلت و در کلمه قازلت که مغازله کردن و خوشوبش کردن هستش ملائم هستش با مشبهان به انسان پس میشه ترشیه درست شد دو تا از نموزج ها رو براتون خوندم سه تاش موند خودم گذاشتم بمونه که انشالله جلسه آینده این رو براتون می خونم باز یه مقداری درس تکرار میشه که همش داریم تکرار می کنیم. بعد وارد بحث استعاره تمثیلی میشه یک خواهشی از شما دارم برای جلسه آیندمون درس تشبیه تمثیلی رو بخوانید تشبیه تمثیلی که ما عرض کردیم توی بحث تشبیه اونو بخونید چون استعاره تمثیلی از روی تشبیه تمثیلی ساخته میشه اونو قیل نگاه کنید یه ده دقیقه یه رو 20 دقیقه نگاه کنید بخونیدش بعد من استعاره تمثیلیه رو که برای شما شنون میکنم دیگه با قول خودمون به بهترین بچهش متوجه بشید و اون موقع دیگه اصلا بحث استعاره به طور کل تمام میشه وارد مجاز مرسل و مجاز عقلی میشیم که بحث دیگریست پس از استعاره یه درس مونده استعاره تمثیلیه و شرطش همینه که شما تشبیه تمثیلی رو انشالله بخوانید. همه شما رو به خداوند صبحان می سپارم. سلامت کامل برای شما رزو دارم. انشالله که موفق و منصور باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.